چیزی هست یقینا هست به نام وجدان که میتوانی به آسانی با یک گلوله خلاصش کنی و برای همیشه از شر حضور ترشرویانش راحت شوی اما در این حال دیگر هیچگاه اثر شادی خالص را نیز استشمام نخواهی کرد و صافی کمرنگ اما عمیق آرامش خواب بی در یک بعد از ظهر بهاری بر زندگیت جای نخواهد گرفت و حتی روی یک قاب کوچک آن چقدر آرامش این حق من است که راضی باشم اما باز مثل سیاسی های ساده جوان پرشور فکر فروشندگان وامانده مواد مخدر در سراسر وطن فکر رشف خارانی که زندگی ما مردم را بر لب پرتگاه آوردند و هنوز شهوت کورشان برای باچخاهی دمی فرو نمینشیند، فکر آنها که هنوز شلاغ صاحبخانهها بر تن نازک زندگیشان به خشونتی خونین ختم اندازد فکر بیمارانی که طبیبان هرگز دردهایشان را حس نمیکنند. بل طرفخانه هایی را در خیش زنده نگه میدارند که باز باید حق ملاقات با بیمارانشان را تابستانها در آنجا خرج کنند. و فکر شبه روشن فکرانی که محور جمیع اندیشه هایشان پوست خند زدن به میهن پرستان و مؤمنان است و نان از راه خیانت خوردن و شهوت سفر به غرب و به اسم حضور در سنگری سیاسی، بر سر سفره اجانب نشستن و زحمت کشان را مستمسک ایارشی های خود کردن و فکر کارمندان پیری که می شناسیمشان که هرچه می کنند نمی حقوقشان را بالمناسفه بین طلبکارانشان تقسیم کنند و پیوسته به گریه میافتند فرصت نمیدهد که زیستنی بی استراب را تجربه کنم و مجموعه همین دلشوره ها هم نمیگذارد که زندگیم را انطور بالمناسف تقسیم کنم که سهمی کوچک از آن به من همسرم و فرزندانم برسد و سهمی بزرگ به دیگران تناقض تناقضی شاید گریز ناپذیر و با این همه چاره نیست زندگی بهانه بر نمی دارد. زندگی به جز مجموع آنچه که انسان در راه ساختنش مصرف می کند است بزرگ مصرف کردن ذره ذره زندگی اما نه مصرفی کردن زندگی مصرف کردن عشق، مهر، ایمان، شور، نیرو اما نه دست مالی کردن اینها بی ریخت کردن و از شکل انداختنشان. شاید یکی از کوتاهترین راههای شناختن شپرششن فکران همین باشد. آنها واژه ها اندیشه ها و مفاهیم را مصرف نمی مصرفی میکنند، دستمالی، چرک، بدشکل، مندرس، بی آبرو غیر قابل کار برده به هنگام ضرورت. و برای ما، میان مصرف کردن و مصرفی کردن به همین دلیل فرق بسیاری هست از دیدگاه من و تو هیچ چیز برای پسنداز کردن نیست پسنداز برای گنداندن و یخ یخزده کردن است برای حرکتی ضد حیات مصرف کردن یعنی خیشتن را تمام کردن برای پدید آوردن چیزی مفیدتر از خیش نیک بختی شخصی بدون قدم برداشتنی جدی جهت فراهم آوردن نیک بختی همگانی چیزیست احمقانه بی دوام و مصرفی. سعادتی مخصوص طبقه مرفه بدون مغز و عاطفه و مسئولیت که تازه سعادت هم نیست. لذتی است همانند لذت نشخار کنندگان زمانی که در چمنزاری زیر درختی میلمند و به آسودگی نشخار میکنند عشق خالص فردی هم چیزی جز شهوت خالص نیست هم عشق خالص به دیگری عشق به میهن به مردم و به اندیشه یک ضرورت است چاره ای نیست باید که برای تقسیم عادلانه شادیها، تقسیم عادلانه مسئولیت ها وجود داشته باشد برای تقسیم عادلانه اندو نیز هزار بار گفتند صد هزار بار چه عیب دارد؟ مگر هزار بار از هزار چشمه جوشان و خروشان در مسیر ونداربون به بند یخچال و از آنجا به علمچال ننوشیده ایم؟ آیا حق است که دیگر هرگز از هیچ چشمه کوچکی قطری ننوشیم؟ در عصر ما هر میخی در هر سنگی فرو می میرود ابزارهای مناسبش را باید یافت ما اگر اراده کرده ایم به همان قلهای برویم که بسیاری پیش از ما رفته چرا نباید باز اعتقادمان را به پیمودن چنین راهی با صدای بلند بیان کنیم حتی بسیار قطعی و مسلم هیچ امیدی نیست که ذره ای از ناامیدی را در خود نداشته باشد و هیچ خوشبینی ساده دلانه نیست که قدری بدبینی را چاشنی نکرده باشد عکس این واقعیت اما بسیار دلنشین تر از خود این واقعیت هست هیچ یعس مسلمی نیست که ای از امید را در قلب خود نگه ندارد و هیچ بدبینی مفرتی نیست که مملو از ذرات شناور خوشبینی نباشد. اگر بپذیری که برای اغلب انسانها رؤیای نوعی معجزه وجود دارد که وقوعش آن را از معجزگی می اندازد و تبدیل به محصولی ایمانی ارادی که نهایتا اتفاق نیز در آن سهمی دارد می کند باید بپذیری که نمی توان تحت هیچ شرایطی تسلیم نگره های ناامید کننده بد بدبینانه شد بنابراین باید امید را باز گفت حتی به صورت ساده ترین انشایی یک تفل مدرسهای آیا تو میگویی در زندگی آدم های واقعا خوشبخت راضی هست؟ گمان نمیبرم همان گونه که دیگر معجزهی در کار نیست و جادویی و کرامتی راضی هم در کار نیست گمان یعنی چه؟ اصلا و قطعا راضی در کار نیست. راز فقط ایجاد می میکند. همین. من به سرسختان جستن، یافتن، شناختن، به کار گرفتن و باز جستن معتقدم. من نه به گرسنه نگه داشتن خیش اعتقاد دارم، نه سیری نفرت انگیز. هر دوی اینها مصرفی کردن یک کشش است دوام در مصرف کردن است و به کار بردن نه در مخفی داشتن و دفن کردن. پیوسته پر و لب به لب نگه داشتن فاسد کردن است. پر کردن خالی کردن و باز پر کردن زندگی است. یادت باشد که من از هیچ چیز که در آن رگههایی از عدم تهارت باشد سخن نمیگویم. عشق امری یک بار است، لذت بردن امری تکرار پذیر هرگاه شاعری را یافتی که می گفت در زندگی خود دوبار عاشق شدم بدان که هرگز عاشق نشده است او چیز دیگری را با عشق اشتباه گرفته است چیزی که میتواند تواند ده هزار بار هم تکرار شود